میگه الله، لقد رعیتو عقیلا وقد عملت حتی استماحنی من برگون سار و رعیتو سبیانه شعص الشعور غبر الالوان من فکره که انما صوردت وجوه هم دلعظم میگه عقیل زیاد مدیش منو کملغ میگو و از من میخواد که از قدانه شما از بیت المال شما بهش چیزی بده نگاه کردم دیدم بچه هاش موهاشون از فقر خاکی شده و رنگشون از کمی مواد قضایی سیاه شده بیشاره از ظاهر ظاهره از صورت خودش و بچه هاش این امیلو من دیدم و آودنی را و کرره علی القول مردده ازرییک اوولستانین وزن ننی عبی وگوین و از سب اقاد مفااقم تعیقتی گش دادم بهش خیلی آمد وقتی که بهوش داددن و تا دل برادرم رحم آمده. حالا که دیگه به من از خزانه ممسولین و از بکمال چیزی بده. حالا که دیگه راه خود ش کرد محبت و عاطفه برادری، در قلب سنگین علی اثر کرد، پیش من، کورم بود، چیکارش کردم؟ فهمه شله و لهو حدیده، آهن رو داب کردم، تو معدنی توها من جسمه به دستش نزدیک کردم. لِيَعْتَ بِرَبِهَا، نزشته به دستشها، به دستش نزدیک کرده، حرم آتش موجب شده که این عقیل کور بیچاره بیشاره که دستشو برای گرفتن تلاد راست کرده یه دفعه رو می‌کشه و ناله میکنه فاونه فاوز جردجی جزیده رفه مید من علمی ها و کار ان یکتر قمیم میسنی ها فریاد کشید برای در منو میخواید من از تو پول میخوام پول که ندادی میخوای منو آتیش بزنی فا قلت اللهو فکلت که سواکل. یا عقیل اتا من حدیدت احماها انسانها للعبت و تجرونی الى نار سجرها جبارها لغضبت اتا من الادا ولا اینو من دضا ای دیشاری مادر مورد، ای عقیل تو که نایه میکنی از یه آتیشی که برای شوخی من توی آتیش گذاشتم یه آهن رو داد کردم و به دستتون از بیستردم میناری و میخوایی من در آتشی دارم که جبار آسمانها و زمینها تسجیلش کرده و شعله برش کرده من بر آتش بکشی تو از این عذیب مینالی میخوایی من از زبانه آتش جهنم نلاله